دارتی توی یک گرفه توی یک میگم که بهشون گفتم اونا هم میخواستن که معرفه کنید برند هایستی داشتن خب گفتم که بیان، برید شیرینی یک آدم میرم بهشون معرفه کردم با اون توفاقم گفتم شیرینی هایی که تو گرفتی زنین و یک تک بشین کنار بقیه روغباتون این چیزو شیرینی شکولو هرچی اینو به تونت هایستی بزاریم حکمان بکنم اش آیسی میل کنیم دقیقا هم روزه هنش میمونه ها مشتری ها میمونه. ها که میماد این آن روزه دقیقا میل کنیم بعد نطورستم شیری میسید کنم ککاوی درست کردن که من رطم گرفته یه سری بهشون زدم تو مشابهشون هستم یعنی نیو روز پیششون بدم بعضی اش آیسیه تا دلتون میخوان میل کردم بعد من میتونستم که در آقا اون شرکت رو معرفی کنم سلام عزیزم معرفی کنم به آقای در واقع رعبی آقای رعبی تموم هنرتو بده با کیفیت برو مثلا این شیرینی رو تولید کنم برای این شرطت یعنی ای. قیل از باسته. نه این, این چارسیت ای. یه برند قطعات خدروه یه برند یه قطعه خدروهی که یعنی البته یه ثبت قطعات خدروهیه اینا بخواستن این برندش رو جا بندازن تازه شروع کردن بهترین کار نگه این کار بخوریم با خاطقه خوش شیرینی ای چکسی بیر برنس خلاصی این آقای ربیه از این فرصت ها استفاده کنم <تصفيق> چون من برای آقای ربیه چی بودم؟ موبریه فرصت احسن و تک شما بزرگوز بزرگوز بزرگوزار دوسته من با سرک از این فرصه از استفاده با مجونی درگه باپ دون قرار بشون مجونم باید اینجا شما به امیده بله ولی همه همه همه ببینید کارت ویزیت یه هستی که داره من این ها شد تو کتاب شهرین در واقع چیز میذارم مالی کارت ویزیت ها هم یادم میمونی یا هر از گای اونا رو نگاه میکنم بگرده مطمئن باشه در ذهنم میره. البته این برگی ای که شما نویشتی رو من حمل همه دانشتروم رو در تمام سالها دارم که پروندی که اینا رو گذاشتم. ولی خدا وکیلی گاه یادم میره که مثلا شیبانی حالا تو اون دور کارشتی بوده گیت دید حضور ذهنم، میکره کارتش رو به داده باشه دیگه. در واقع خود آقای مهندس براسود، در واقع یکی از کسایی بوده که من به واسطه همین در واقع ارتباط من خودم و شما با ایشون آشنا شدم. یعنی رابطه اینقدر چش شده که حالا امروز با هم دیگه در واقع داریم همکاری می‌کنیم. در حدی که ایشون هم آدم توامند و یه بیزینسمن از نظر من حرفه‌ای هستن. خب آقا بحث شیرین پرداخت. به من بگید که چجوری پرداختتون بحث قاعده و استانداردیه؟ سازمان ما طن تبعی داریم. بند، بند. هم تعال خلاص پس طرح طبق بندی مشاغل شما احتمالاً یه حقوق ثابتی داریم که پایه هست بعد دیگه حق مسکن داریم حق لباس داریم حق نمیدونم خور داریم که میاد اینها با هم دیگه جمع میشه البته یه قانون جذب هم داریم که این بحث اون شایستگی هاست که بسته به این داره که شما تو سازمانتون اینم حازش استفاده کنید یا نه ولی تو تابوهمندی مشغلت هست تو دستت حقوق شغل هست بله حقوق صنار این دو با هم دیگه جمع میشه بله میشه؟ بله دارم. که یه گروه های مشخصی هم برای شغلاتون داره خب دوستان به طور کلی میگه نظام پرداخت در واقع اون چیزی که به صورت بر حسب اون توانمندی و مهارتی که شما تو کار دارید و اون کار رو به سانجام میرسونی در واقع به شما یه پرداخت صورت که میتونه پولی یا غیر پولی باشه بعد میگی که این جبران خدمتی دوستان به چه شکلی هست یا مستقیمی یا غیر مستقیمی مستقيمش رو نگاه بکنید نگاه بکنید مستقیمش میگه که بحث حقوق و مسکن و در واقع مباحث تشویقه یعنی پولهای رو که در واقع شما توی حکمتون دارید ها و غیر مستقیم هم هزینه بیکاری هزینه بیمه بازنشستگی و چیزهایی هستش که در واقع به شما پرداخت میشه و برای آتیتون هم مهمه قیل از اینا شما گاهی میان یه پاداش سالانه، پاداش تولی یا اینکه میخوان ارتقا بدن به شما یه کار ارزنده در یه پروژه ای رو در یه زمان خودش ولی با یه صرف جویی در حزینه و یه کیفیت بالا دادی اصلا میاند مدیر آمه یا مدیر مسترم میخوان به شما یه پاداش بده اینا تو این دوتا نمیگنجه دیگه درسته؟ چون به صورت موردی به شماها پرداخت میشه و هر لحظه هم قطع بشه. این چیزی که تو مستنم و غیرمستنم چیزهایی که مشخصا تو حکمتونه و همیشگیه م. یعنی قانونیه یعنی اگه به شما پرداخت نشه میتونی بریش شکایت کن م. ولی غیر از یعنی پرداخت های دیگه هم داریم که بر حسب نوز کارم و سازمان ما به ما پرداخت میشه که اونها تو این دوتای نمیگنجه اونم موردی هست مستان الان حقوق پایه وزارتها چنده شیست هم خیلی چیزا دیگه وسط تیر اینه که تا حالا با رو بحث‌های تماممندی و شایسته خیلی کار نمی‌کنه طرح اصلا رد شده‌ای در هیچ جای دنیا ازش استفاده نمی‌باره. ایران میدونی به خاطر اینکه خیلی کشور قانونمندی نیست، موقعی کازمی ازم موقع ایبرانی ازم مجبونم که از این طرح استفاده میکنن چون شما کارفرما تو جی بخوای می‌خوای حق من کارگر رو مشوظ job بونی. اصلا من دیدم خیلی همان شرکت های خصوصی آقای پزمی رو وقتی میری استخدام بشیم که بیدیم کف آمده باقا دختر فوق هسته، تقومنده، تا سابقه کار دار، کاربلده، شیبانی خودش استاد آیتیه خب نمیتونه بهش 700 تومن بدی حالا بگه یه برم این اون و بگه 800 تومن، درش نون نمیشه که اصل کله هزینه ماشینش در نمیاد در ماه. درسته پول بنزینش رو حساب بکن پول هزینه و استهلاکش رو نمیتونن حساب. تو خیلی هم خونش دور نباشه. یعنی از کرج نه به تهران، از ورامین و اسلام شهر نیاد، از رودههن و لباسون نخواهد بیاد. بخواد همینجوری تو همین نزدیکی در واقع منطقه‌ای باشه که کار میکنه در هر حال طرح بسیار مناسبی، ولی فعلا برای ایران طرح چیه؟ بله. اصطلاح محشدی یه سری شرکت ها هستن مثلا برای اینکه طرف انگیزش بیشتر بشه مثلا یه سری چیزای فیزیکی رو در نظر میگیرن مثلا اینکه به طرف گوشی میدن تبلت میدن نمیدونم بله این دیگه بس خیلی ویژوال نص تمام آره دیگه آره ولی اینا چیزهایی که به عنوان در واقع از شما هم گرفته میشه وقتی بری اینا چیزهایی نیست که مال خودت باشه اینا تو اون قسمت ای. اون قسمت دیگه بحثای میگه که بحثای مزایایی نیست. بخصهای پرداختیه. درست. ولی میتونی که قسمتی توی مزایای رفاهی مثلا من شرکت شعرانی بر مدیرانش میده آقا. من هم میدم. هم تبلیت میدم. هم روشی میدم که هزنانش خودم متقبل میشم. خیلی هستن خونه میدم. به مدیراملشون خونم میدم. یا میگه آپارتمان درختیارش میزنگه بستگی داره به اون سازمانیه دیگه در یکتر اینجور نمیشته اوامل کننده رو نگاه کنید میگه ببینید چند تا آمله های مختلف وجود داره میگه ببینید خیلی از این سیاست های تعدا تفاوت تو خودمون سازمان هست همی که الان گفتیم این سازمان خصوصی هم هست که برای اینجور خیلی بالایی هم حقوق میده یکی دیگه با کفشونده. تفاوت توی رفتارها شغل کارکنانه، تفاوت تو ماهیت کاره، ویژه و خصوصیات کارکنانه، توی ها بحث تحادیها ها منظورش مجموع ها و اجتماعه های قویین که سازمان ها درگیرشونن یکی هم بحث مذرت کارییه دیگه. تفاوت تو موقعیت های بازار کاره، یعنی چی توی آم میگه آقا جان سازمان شما اینکه چی تولید بکنه؟ چه کسی مدیر عملش باشه چه استراتژی هایی داشته باشه چه فناورایی داشته باشه با اینکه چقدر شایسته سالار باشه با به دیدگاه و نگرش اصلی سازمان تفاوت و paradoxش وجود داره حتی یه سازمانی میگه کجا توان من به عنوان آقای به عنوان بیزینس شخصی اصلا ببین من مدیران بولا بالا من نمیتونم بدم چون من یه چی دارم ا در مباحث مالی دارم یه گردش پولی دارم یه فروشی دارم که نرمشش در تست مثلا 10 سال گذشته دارم میبینم که پنج سال گذشته میبینم نمیتونم یهو به یک 8 میلیون بدم من تو همین رنج میتونم هر برای همین من مدیر اصلا نمیام دیگه وقتی با شما میام وارد باشم شما میگی من اصلا 2 تومن به بالا ندارم دیگه خداحافظ من برای شما کار نمیکنم قیمتم این نیست یادم بندوس تا آخر مبحثم روی قیمت خودمونم صحبت کردم طبعا تو رفت داخل شغلی کار این بحثا بحث انگیزشی فردم هست چه عمل کردی داشته باشه چقدر آدمی باشه که غیبت کنه سازمانو بخواه ترک کنه انگیزه داشته باشه یا نداشته باشه اینها باعث باشه که من خودم مثلا من آدمی باشم که تعهد سازمانی نداشته باشم مدامور خسی برم همش فرمای استعلاژی برای شما بیارم که مریضم شما خب به من تشویق تشوی خیلی تو فکر نیست که من نگهداری یا حقوق من افسایش بدی درسته؟ ها پس بنابرای رفتارهای خود ما هم توش تحصیل بذاره یکی بسته به ماهیت کار داره یه موقعی هست که پوستی هستش که از نظر ما پیچیده است مثل پست مدیر فروش بچه خیلی استرست دارن هسترسشون بسیار زیاده خب قیمت که شما به مدیر و فروشتون میدید با آنچه که به مدیر و تولیدتون میدید متفاوته با آنچه که به مدیر من و به انسانتون میدید متفاوته درسته؟ پس محیط کار هم اینکه حالا اون کار چقدر برای شما مهمه ها سایی میکنه داره که شما به من بگید ببین مدیر تولیدم خیلی برای مهمه چون تولید من خاص ویژه است نمیدونم آدم هرفه ای باید باشه کارگرهایی دارم که باید یکی باشه بهتونه اینا کنترل کنه بتونه تعامل کنه من برام این آقای سلطانیان که مددی تولیدمه خیلی برای ما همیت داره پس بنابراین این نوع رو پرداختم با اون متفاوت خواهد بود در مورد ویژگی ها خصوصیت کار کنهانم بله شما چه تحصیلاتی داشته باشی؟ چه دورایی دیده باشه چه تجربی داشته باشی چه دانشی داشته باشی چقدر اصلا آدم شایسی برای اون شغل باشی باز هم به ماهیت پرداختشی کار می کنه متفاوت میتونه باشه برگردره با به ماهیتی اونتوانمندی های خاص شما ویژه شما چیزی که منو از آقای شیبانی متمایز میکنه اون شایستگی آم پس بر منین نرخ ما هم با هم دیگه چیه فردادیم جفت تودییه حوزه باشیم با هم دیگه فرد میکنه بعد یه مسال قدرش و منافم هست. همین که میگید تواقی بندی یه مشاقه وزارتکان میگه ببینید تو نمیتونی کسی 400 تومان بیده. اگر من بفرحمن شرکت داری یه حقوق 400 تومان میده میتونم چیکار کنم در دکوریت تو برندم. چون یک کفی قائل شده. همان که خدا رو شکید. من برای همین میگم که اینا خیرا پیدا بچو اگه باشن انقدر ما های سوء استفاده دارین که مثلا به شما یه قیمت 200 تومانی هم پیشنهاد بدن و یه بدرخ بیچارهایی هم واقعا برام می‌دستون بیون کار بکنه. و بعد تفاوت تو موقعیت های برای همینم هم هست که خیلی جا میگه من بیمه نمی‌کنم چون اگه بیمت کنم موقع پاسخ gua. مگر شما به صورت چی باشه غیر قانونی کار کنی من با تو یه قرارداد شخصی دارم که بیمه هم بپردا کنم که من حتی داشتم توی آقا کاظمی چندین نیرو داشتیم توی سازگونه مختلتی که استخدام می‌کردم که اینا مثلا ما بیمه نمی‌خوایم. اینا هم آدم آدمای خطرناکیان. البته مشکلش رو میدونی که چیه؟ اون یکی میگم ما بیمه نمی‌خوایم. که می با بیمه نمیخوام اصولا بچه ها هاین خانم های نه نه خانم هستن، پدرشون فوت آه. کرده در حقوق می گیرن اگر جای بره بیمه برشون پر رو میفهم این فقط اون رو قطع میکنن ازدواج و کار برای ما شرط ص برای هم اون بچه ها وقتی میان خواهشکن این... برای چون کار به هر حال غیرقانونیه و من همیشه توصیه میکنم به دانشپذیر روی هیچ غیرون بازرس بیمه اگه بیاد نه و این کارم غیرقانونی نکنید نه، به خاطر اون آدمه چرا اینجورو بفر کنه بره توامن شد چرا متقیب اون حقوق هست، بره مستمری است بره توامن شد، بره دنباره اون میده چه ترس داره؟ اون ترس این داره که این کار از دست بده آه. اون حقوق هم از... ب... ب... خودشو چی میبینه؟ توامن؟ نمیبینه یعنی، در واقع همه این مبحث رو تحلیل میبینه ما به رو ها تو اگر دوست داره بیاد با شرطا شما اگر نه استخدامشون نکنه چون برای شما هم و بعد یه چیزی که شما داری بهش آموزش میدی که این کار درستیه شما با خواستش کار میکنید در واقع موافقت میکنید تفاوتون واقع یکی بازار کاره یعنی چی؟ ببینید توی اصولا بازاری ما یه کف قیمت داریم میگید ببینید پا اینترین خانم فروخزارده درست میگم؟ خانم فرو میگه که یک هاشنس تو حوزه فروش دیگه یک و نیم نیست ها؟ این موقعیت بازار کار برای همین شما اگر یه دفعه بخواییم مثلا به یکی هکی ستوار ببینید که هفه بازار این نیست قیمتش ها؟ یا خیلی خوب باشه تو این بازار خجرستازی میتونه اینو نوادیم و تو بازار ما که به صندت تو این حضر داریم میتونه صندت کار میکنیم اینقدر قدرت پرداخت ما نیست یعنی بازارهای مختلف و صنوعی مختلف میتونه روی این پرداخت هم بنویسید کنارش چیونی میتونه تفاوت ایجاد بکنه توی این پرداخت ببخش، بود یه با برگردیم به تفاوت در اتحادی آه میگه قدرت و منافعی که دارم ببین همین هم که خدمت گفتم وزارت کاری میگه که آقا جان دولت میگه دولت به شما مقرر میکن چه بیزینس شخصی داره چه داری کار دولتی میگه کفش 700 تومانی تو زیر این نمیتونی به کسی بگو این قدرت دولت و اتحادی کارگریه که شما تو خارج از کشور چه افراد اتصاب میکنن و پایینه میان به اتحادیه فشارم اتحادیه میگه اتساب ما پشتتونیم باید حقوق. کفش 700 تومنه اگر دلار زیر 700 تومن کارو بخوام. چیکار؟ بعد دو روز اتساب می‌خوام. یا یه, یه انتظاری کارفرما داره، کارفرما برآورده نمی‌کنه. میرم با اتحادیه مصرف با اتحادیه منجریه. چیکار؟ من اتسابا. این قدرتشونو نشون می‌ده. توی ایران فقط بحث همین قانون کارو داریم. ما خیلی اتحادیه و جمع و اتساب اینها در دوره حاضر نه نداریم فقط بشن خود کار فرما برای کار نتخابه خیلی کم دیدم توی دهه پخیر ندیدم ده اتصاب شون میدونی که بحثوی سیاسی بهش میتصبم افراد پرهیز میکنوند که محیطای کاری من حتی توی محیط دانشگری که کار میکنم بیادم مثلا یکی دو بار ما که تصمیم میگرفیم جمعی نامه دادیم مثلا یه ذره شکر بریید واسه این موید دانشگاهی اصلا بحث اقتصاد مو نظر بود چون ما هم همه رو عین میچرخون چون میگن که رو ما نمی‌تونی بعد اونا شما رو میچرخون اصلا یه واکالش چون چون مدیر جای دیگه اومده بود یه ذره باکنشش چیز بود غیر بود ما ساچ راه می داد بحث داش شده بود استاد گفتم تصوف خالص صادق گفتم کجا هر باستان طبقه قانون باید از وزارت کشور تغوضای ترزاولات سفر کنن؟ باید، خیلی پروسته داره بعد چیه نمیدونم، مالا امنیتی بیاد اجازه بده خیلی پروسته خاصی دارم، نمی کنم، من نشنیدم توانید دهیخه نشنیدم جایی اصلا همچین ماجره های اعتصاب اینجوری توی به خصوصا جاهای بزرگ، مثلا کارخونه جا، جاهایی که متبر بشن، سنایه، فولار، نقض، اینجا حالا آقا ما اومدیم پرداخت های مناسب می آقا میگهد و شما اگرگه پرداخت موصفانه عادلانه به پر مدیانه داشته باشید فید زیادی داره. نگاه کنیم چیزی نیستش که من بخوام توضیح بدم اگر جای سال دارید بهپرس توضیح بدم. اوش دیگه وقتی شما پرداخت منصفانه داشته باشید من احساس آرامش می خلاقیتم بروز میکنه چون متمرکم به اون کار، گله و شکایت و خستگی ندارم کارم دوست دارم با انگیزه کار میکنم برای همین آموزش پذیرتر هستم حاضرم که دانشم رو هفته شده من روشت بکنم سازمانم روشت میکنه چون ما امکنه همسو همراه با سازمانم میشم درسته؟ و ترک و در واقع قیبت و سازمانم خیلی کم میشه توی مجموعه داری یاداش میفرمین؟ متوادل خواهی ایمیل من رو گرفتیم متوادل یعنی در زمان یعنی در زمان خودش مثلا اول ماه پرداخشه یا نه مصفانه نه. مصفانه نه نه نه منصفانه منظورم اونی که شما بر طبق آنچه که شایسته است حق بگیرید یعنی مثلا علا به شما بگم شما باید بدونید ساعتی چقدر میارزید میدونید دیگه خودتون چقدر اینست خودون چقدر بله چقدر برادر کازمی ازدار چقدر؟ قیمت شما چقدر؟ نه بگو من چقدر بگو من به عنوان یه مدیر آورد بر... نه، دیدگاه خود, ساعت خود رو بگو ساعتی رو هم نگفتی،, نگفتی. بگو ماهانه چقدر؟ ما ضرب تقسیمش در درمید حالا ساعتی؟ یا بگید، یا بگید که ماهی, ماهی آهیره چقدر میارزید؟ بیس میگید بیس میگیدو پس نبه بکم ترزین امروزایت بدید وقتی گفتم 20 نون وقتی ضربو تقسیمش کردم مثلا میشه ساعتی مثال میزنم من ساعتی اه... نه تو ساعت های کاری خیلی بیشتر در میاد 20 44 ساعت هفتگی حساب کنید نرمشو حساب کن الان یکی ضربو تقسیم کنه در میاد ساعتیش ضربو تقسیم کنین من سیوانی ببین تو 44 ضرب در 4 بکن من چهار در سده هفته شیش میلیون تقسیم از سده افت کن چقدر شد؟ یا زه. یا زه. سده هفته شیش یازده یازده یه ده تومن؟ یازده یازده سه تومن که قطمئی کم می کم می کم هشت تومن با بیس میلیون آن؟ صده ده تومن خب فرز بگیریم حالا 100 تومن اگر ست توم هم بیارزم سارس. حالا اگر وقتش نیست دارم با تلفن حرف بیدم آقا این تلفون ارزشش برای همچه یکتا چون من نگرم میارزم تلفون حفظی بیشتر کار یه اهمیت انجام نمیدم کاری که کار من نیست رو انجام نمیدم چون من درون گرونی هم برم خودم من خودم چای بیارم وقت رو نباید بزن من ساعت ست توم دارم بیدم من این چیکارکی به شما میکنه حالا اینی که آقای مهندس گفت یه معیار چیه ذهنش برای شما هم باعث شاخصی داشته باشید و واقعا اگه گفتید مصرفی آقا من 20 میلیون رو با کمتر نه زیادت بدی آقای کاظمی ازم و سال دیگه باید تورم رو بنزین روش بیشترش کنیم و بعد بیشترش کنی یعنی دنبال چی باشی درآمد بیشتر بشه چون ساعته و هر چن مقاوم‌ترش این بسمه میتونه در آخر مثلا تغییر کنه ها چرا شما مقاوم‌تر شدین خب شورای استگیم رفت درآمدن پس من بعد 25 شن 22 من بگم چرا به دردی که این کارو کردم این کارو کردم این ارتباطات رو یاد کردم موذاکرا رو خوب یاد گرفتم دو تا پروژه اضافه کردم پروژه چند چملیونی گرفتم اینا همه میتونه رو قیمت شما چیکار کنه تحصیب بزنه ولی فقط چرا بهتون میخوام بگم برید شما قیمت خودتون رو در وینیشه برای خیلی وقت ما درگیر کارهای بی اهمیت ساعت کاری میشیم که نباید بشیم این قیمته همیشه یه آلارمی به ما میده مواظب باشد. داری بیراهه میرید. داری ساعته که برای ده ازار از از تومن. آه؟ بس نه شما علم نیم خواهد با مواظر بکنم بخش بخنادم. شما در هر رو بزن. نمیتونم ساعتی ست تومن من تو رو به نظام سرکت داشت. ست تومنه برام مهمه. آه؟ کی با شما صحبتم؟ برنامه تنظیم میکنم و حرف های مرتبط. بگه با هم گپ میخ موقع زنده تفریم بدی که ساعتشون حساب برای اخوان تو کار هستم این باید چی باشه؟ برای تو مهم باشه برای همین میگن که بیزینسمن های هرفه ای سر محیط کارشون تا خونه شوشی باشه نزده برای اینکه تایم کمتری رو شکار کنن حده اعره بیشتر بتونن استراحت کنن و به خانوادرشون برسارم چی دیگه ازم پرسیدید؟ برای در صورت تا نمید دوستان باستانی باستان پیشتن که حقوق با معمولا فروشنده ها میگیرند دو کار دو... خی دنیا گرونترین مدیران غیر از مدیران عرشد، مدیران بیانی بین مدیران منابع انسانی و مدیران به فروش ها مدیران بازایبی فروش و منابع انسانی منابع انسانی به جهدی که گفتم دیگه امروز تو اون برای آب، نه تو ایران ها من صحبت اون برای آب دارم میکنم ب... جامت آخه اینجا اینجا ببخشید <تصفح> ما آمار دقیق نداری. خب شما تو شرکت ما هستید. یه بازار جام؟ آهان تو شرکت ما به جز منشی و اپراتور کسی دیگه رو آها آه شما چیزی پورسانتی کارم در پروژه وارمی؟ خب دیگه 얘 رو بازا کردم اینه که خب این پرداخت پرداخت ثابت نداره دیگه. این هم یه شیوه پرداخت دیگه. ولی بیمه که میدید؟ بیمه میدید پرداخت چیزی نداره دیگه. یعنی یعنی پرداخت ثابت نداره. داره. بله. شما شیوه پرداختتون متفاوته. ولی واقعیتش نرم نیست. من یه بودی رو بازاریابی رو می‌بینم در دو تا شرکت مشابه. میگه اون یکی 8 میلیون. یه مدیر فروش اینجا دارم می‌بینم که یکو 500 کی اینجا 12 میلیون داره خیلی هم تفاوت داره ها. اون گوجیششون اندازه است؟ یک. چا؟ آره مثلا خیلی مشابهن. اولا س... تو... با... که توی ایران چون یه نرم مشخصی نداره و چون شایست سالاری نیست خیلی چیز نداره یعنی شما آمار دقیقی ندارید و من میتونم به شما بگم که سلیقه به جارعت میتونم بگم تو ایران سلیقه ای ولی مدیران را ارشد تمام دنیا بالاترین و علم خصوص اگه بیزنس مال خودشونه بالا خیلی در دارن فرد آدمای خلاق و ایده پرداز و استراتژی من اونها هستن ولی تو بحث مدیران میانی امروزه توی دنیا گرونتره مدیران مدیران منابع انسانی و مدیران بازاریابی فروش هستن کل دنیا خب بحث مدیریت استعداد چیه بحث مدیریت استعداد به نظر شما چی بگید کمک کنید علی حسین خانم طاهرخانی بفرماییم هر کسی تو اون استعدادی که داره جای خودش باشه شدیده مدیریت استعداد یعنی من بتونم با توجه به های شما چه بلغاور، چه بلفل شما رو کنم و کمکت کنم استعداد های بلغاور، کار کنه؟ گروز کنه، بلفل بشه و کمکت کنم این استعداد های بلفل، بلفل تر بشه این شما به مرحله شکوفایی برسید و چجوری این استعداد رو در واقع کنم؟ اینکه شما رو نگه دارم بهتون در همینی که شما رو جذب کردم شما هم حفظ کنم برای مجموعه. موتیوغه استعداد از بحث توی تدبیر توی تدبیر شماره 260 اگر اشتباه نکنم، اسفند 92 یه میزه گردی در رابطه با این مسئله مدیریت استعدادها و حتی در رابطه با تجربه اپل یه اپل توی مدیریت استعدادها یه مقالهاتی چاپ شده اگر دوست داشتیم اون تدبیر رو بخونید. یه مجله علمی پجوهشیه مجله تدبیر شماره ۲۲۶ فکر می کنم مال اسفند ۹۲ در رابطه با مدیریت استعداد ها چند تا مقاله توش هم میزگر و مقاله هست بخونید این خیلی از اون اونا که دوست دارم به این مبحث علاقه من هستن فکر می کنم چیز ها هست سیدی هاش هم وجود داره مجلش اگه بتون پیدا کنید شاید داشته باشه تو این شرپتتون مدیری از بعد خود کارا رو بود نه <تصفيق> خوش تایید بودیم نه استاد این کلیه ی چیزهایی به ما درست دادن و اینا یعنی کورس اولش برخورتون بلد. مرسی موچند کورس اولش که دکتر روازم نهلی بودن دکتر بازاریابی و سبان که... بازاریابی که بهتون درست داده؟ آقای خویه آقای خویه خب خیلی ممنوع حتما نگاهاش میکنم مرسی کمک هم میکنید م... میتونم پیشناده بدن با توجه به این محتوی هم که هم میکنید این نگاه کنید میگه که چرا ما دوباره میخوام اشاره کنم به صحبت که دو جلس هست رو من باید میگه همه هدف ها به خاطر اینکه این, این انسان جز سرمایه های چیه؟ سازمان سازمان و بزیار چی داره اهمیت داره پس برای همین هستش که باید مدیلیت استعداد رو هم داشته باشیم توی بحث مدیریت استندگاه مرتبط با بحثای در واقع آموزش و توسعه است. میگیم آموزش دنبال چیه؟ آموزش دنبال این هستش که دوستان سعی بکنه شما رو تقامند بکنه توسعه بده برای کار سازمان ولی واقعیتش که بخواد دانش و نگرش شما رو چیکار بکنه ارتقا بده. اگه شما جایی رو بینش اشتباهی داری اصلاح بکنه یعنی یک بهبود مستمر روی رفتار شما داریم چون گفتیم یادگیری زمانی اتفاق میفته که شما توی رفتارتون اون رو نشون بدید شما خیلی دوروها میبینید خیلی فلسفی میام میاد ولی اگر از اینجا رفتیم، فقط گفتین بحث چوبانی چه عالی بحث مازندران چه عالی هیچ تغییری تو کد ایجاد نشه هیچ آموزش ندونه یعنی که یاد دیگه آقا به دفاع نیفت پس بنابراین بحث آموزش دنبال تغییر دانش نگرش شما هست و مطمئنات این دانش وقتی ارتقا پیدا میکنه و نگرش شما تغییر پیدا میکنه توی تعاملاتتون، توی روابط سازمانیتون حالا به صورت گفتی از بالا به پایین پایین به بالا یا توی تیم چکار کنه تحصیل گذاره و حتی تو شبکه های ارتباطی سازمانتون چون خیلی وقتا شما مشتریان بیرونی دارین که باش در ارتباط هستی مشتریان حقیقی دارین و حقوقی م? پس تو تمام این ها میتونه تحصیل خودش رو شما ببینید فراید آموزشتی خیلی ساده بگه آقا جان اولین چیز که شما تنه نیاز سنجی بکنی ببینید که آقا جان نیروهایی که تو سازمان ه چه آموزش هایی رو لازم دارن؟ و بعد برشون برمون فیزی میکنین احتفا آموزشیت رو مشخص میکنین و حالا میدید که خیلی خوب این آموزش ها میتونه از روش های مختلفی مثلا ویدیو کنفرانسی، سمینار، کارگاه بیرون از سازمان، درون سازمان از طریق بانک در واقع دانش از طریق انتقال تجربه گروه های اتاق فکر اینجوری یاد بدید. الگو برداری، از طرق مربیگری خیلی شیوا هست چیکار کنیم آموزش رو انجام بدیم حالا یا تو سازمان یا مثل شما که بیرون از سازمانتون اومدی یعنی اومدی یه مؤسسه‌ای خارج از سازمان چون تو این دوره آموزشی می‌بینید چیکار کنیم آموزش اتفاق بیفته و حتماً یادتون باشه چه تو مؤسسه انقدر شما الان شخصی اومدید آموزش می‌بینید کدومتون سازمانی اومدید پولش سازمان داره میده خودت تو شخص اومدی. پس سازمانتون شما رو ارزیابی نمی‌کنه در راستای این دوره. شما خودتون از این دوره ارزیابی داشته باشید. ارزیابی دوره و بعد اثر بخشش برای خودم. چقدر تو کارم. متفرنه ماده شما توی سازمانتون ارزیابی عمل کرد داشته باشید دوستان. حداقل یک سال آینده این دوره باید اثرش را در شما نشون بده. اگر شما یادگیری براتون اتفاق گفته باشه و اونا میگن چقد عوض شدی شی. چاپه این مدیراتی شما می‌بینم توش چقدر ارتباطات امیر حسینونی شده قبلا سوتی میداد به مذاکره الان می‌بینم چقدر سازمان یافته صحبت میکنه قشن با مشتری چقدر دقیقه رو فرهنگ‌های شهرت بین المللی که داره باشه این تغییری رو شما فقط حس می‌کنم حالا یا فیدبک شفاهی به شما بدن یا ارجوبه عمل کرد اگر داشته باشید که اصل مثبتش رو خودتون می‌بینید هر کدوم از این بخش‌ها رو برای توضیح دادم این تعین اهداف آموزش که میگه دوستان میگه به هر حال این یا ای نیاز سازمانی یا نیاز فردیه یه موقع هست من این ای نیاز در خودم بسارم مثلا من راید که تو جایی که رشندم میگم من یه ذریع احساس میکنم که تحلیل های آمارین ذریف یا الان برای این پروژه نیاز دارم پس باید برم آموزش برم خودم درخواست میدم یه موقعی هستش که سازمان نیاز داره سازمان میگه که من یه پروژه در حوزه آیتی گرفتم شبانه تو قرار مدیر پروژه بریش تو مدیر پروژه خوبی ولی باید بری یه کمی از آیتی یه چیزی یاد بگیری یه بیس کلی از آیتی بدونی بعد حالا اعضای تیمه آیتی مدن تو مدیریتش رو میکنی پروژه رو مدیریت میکنی تا با حزینه مناسب مبلغ مناسب و با رضایتمندی تیمت به نتیجه برسه به اون خروجی که میخوام. پس برنابراین یا در واقع نیاز سازمان یا نیاز فرده امکان داره هم نیاز سازمان باشه هم نیاز فرد باشه در چه حالت این اتفاق میاخته؟ که من باید برای اون شغله توصیح پیدا بکنم هم نیاز سازمان هم نیاز خودم خب، روش های سازمان یا زمن خدمت یا خارج از محله که داره روش های مختلف رو میگه هر کدوم رو نمیدونید بگید برای توضیح بدم چون در موردش صحبت کردیم خیلی هم گویاست همین الان هم انواع اقسامش رو برای توضیح دادم شکل مربیگری چی بود؟ یه نفر توضیح بده که امیر حسین رو در واقع سجاد و آقع ربی که نبودن بیا آموزد ما توی مربیگری خودمون نمیان بگیم که چجوری کار رو انجام میده. میبینیم بعد کمکش بکنیم که اصلاحش بکنیم یعنی ما به کارپانهانیم رو تو حل مسئله کمک بکنیم مسئله رو براش حل هل... نمیکنیم باش همراهی میکنیم برای همین گفتیم که دوستان پیزایی که برای آینده خود و هم مدیر از این هم آیندهی که برای خود متصابه شدیم اینه که مدیر بشی باید نقش مربیگری رو ایفا کنی برکاتش برای مجموعه و خودت بسیار زیاده اول قدمیام اون که ماهیگیری بهش یاد میدیم ماهی, بشت. ماهی بشت. بله دقیقاً هر قدیمی قدیمیاتون گفتن درست گفتن کشعمل من. من که اینجوریام یعنی من چون حالا نشد یه چیز قدیمی در واقع یادم بیاد یا بشتم و ببینم که سنخیتی با زندگی خودم شخصی نم هر چی با گفته درست گفته هر چی پدر گفته درست گفته ما امام بودم دین دار که مثلا هست yes. واقعا اینجوری نبوده اونها بلد باصو بیزینس با من بوده خیلی خوشحال آقا نمودن میگم خیلی ارتباطش شما خاطر اونجا احماقشون ولی بلد بود با مردم مشتری مدار بود ولی حالا بلارو که اینجا بود که نبود و همیشه با شما لبخند و لباطی مثلا جزء رفتار شما با مشتری و مذاکره است همیشه با لبخند بزنید گفتین چرا نگتونی چرا؟ چرا لبخنه میزن یا آقای کازیم گرزه خیلی لبخنه زیبا میشین یه دلیلش که زیبا میشین یه دلیلش اینکه یه حصه خوب به آدم ها چرا؟ چون شهرتون بچه هاش بشه آدم شما اعتماد شما یه بچه ها اینجور نبهند بگفت همه امروز اگه بچه کچی به خونه دارید یا خواهر زده بردار زده خواهر بردار همجور نباش خوشش یه سمت منم دقیقاً همونطوره چون شما یه انرژی مثبتی میدی. برای همینگه همیشه لبخند رو لبتون باشه. البته از خانم‌ها خواهش برم همیشه منظور تو خیابون مواظب بشین چون سوء دوام میاد. اونم تو ایران بخزن. تو کمتر چون هم آجی‌تر چون اونا خیلی تعریف‌های مشخصی دارن. خیلی خوشروه. کدوم یکی اصلا چهرهشو با خوشیش بد شما سلام بله هیچ نیتی نداره تو ایران نمیشه. منم فکر کردم سلامت جوسنان چه خیلی بهش می‌مونید؟ <تصفيق> منظرم که بعض اصطلاعی می که می‌دهن، مانه فقط فرهنگ سرف ایرانیست تو ایران باید به خصوصا خانوم‌ها، آقای اون که همیشه بنابرایت هم برای خانوم‌ها خیلی بیشتر، چون یه مقداما تفاوت زنمردی و این دوتا جنسیت تو ایران بیشتر مسائل اعتقادی مذهبی داریم، فرهنگی داریم باید موازه خودمون باشیم تا ایجاد سوی تفاهم من خیلی. مشار دارم چون خیلی رابطه نزدیک آن یهکاز می با آدم و برقر میکنم آدم راحتم، آدم ها جنبه هاششون سوی تمامفاشونشه. هم. همین همیشه با یه فاصله مجبورم مثلا حرکت کنم و اگر اینم بعد میفهمه با بهش بفهمونم ولی این این ایجاد میکنه. چون نو میگه، دیگه ورثه خودم چون مشکل نمیتونم به شما بگم که همش لب خامزه بخوام جوریه لغو اصلن خوشاخه نمی‌تونم صبح خاله اصلا این عروش که اصلا گره خورده تو 7000 تا تاکس کرده بود هنوز چینه مثلا اینجاش وجود داشت ها پس بنابراین شما باید خودتونم همین حالتو داشته باشید ولی میخوام بگم چون خانم هستم خیلی وقتا اجازه چی می‌کنه روی تفاله البته چون نازه شو کسی رو خرابوها میگم صورت نون وقتی شما احلی چیزین همچی رفتار تو مشخصه یه رفتار معدبانه، مهربانان، سمیمانه تو هم با جدیت داریم اون مسئلهش اینجاست که ما با یه عید آدم های چی سر رو کار داریم پیران؟ امان خوب سه درست رو درست خوب؟ یک درست آدم هایی که زرهایی چی دارن؟ مزدی دارن، مریض ولی کاره میخوام حرفت رو بگم نرسی از این مصبتیه کار خوبی هم کردی حس رو ولی یه واقعیت ما توی جامعه همون الان ناهنجوره های اجتماعی یکی از نوزنات بزرگ جامعه شنگسانانه و بتونم بگم تو مرز خطر درمز که برم میگم نمیگم ما اینا آقای دکتر و مرحشی میگم که اینا محققا اینا کار کردن ما نهنجاری ها اجتماعی خیلی داریم یه دلیلش خاطر یه سری مسائل همون محدودیت هایی که الوی بی برا چیز شیخالی گفت گیریم توی شعب و رنگ بپوشی با الان میگویم <تصفيق> بجا بشیم؟ برا. نه نه نه نه جا به جا بشیم مشکلی بزن. من فقط یه چیزی رو انقام بکنم ما هفته اول حسابداری و بودجم رو استثناء هفته اند شنبه برگذار میشه چون دکتر خانمامدی جمعه صبح نمیتونستم بیان ما پنشنبه این هفته ساعت دو در خدمتون هستیم من فقط میخواستم این رو خدمتون ارز بکنم مشکلی ندارم دوستان بله هنشن به ساعت دو تا شیشونی استثنائن جلسه هوایش هفته بعد پاقا باید بهش خبر بده من کاشون از سران تو آقای کاشوالی معمولیت بده در این رو نگم بله باش کسی امرو بابنده نداره؟ مرسی عرضیز مرسی واسه خواهیش کنم خواهیش کنم جمعه میخواهیم هفته دیگه من به همه زنگ میزمم توی بیدار رو بردم یه حال توی <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تص بیزنید تو سر خود این کوف؟ این کوف؟ بچیه، سانترن نمیده اونجا دیگه ما میداره تو برسه من بعد برسید خیلی عظم آمیدونم بعد دستان منون بگیرد که من یه جبه برد اعتمال نخواستم دیگه برمیدونم خیلی سال که اونرم یه زمان تمام همه ها به پنیش همه آقا من که بریم کوف یشه کوهانا تیمو یه جواب تعظیم کنم من تو تپه با میام ولی کوه مون نه اون خودش تعظیمه ما عطش چرا باید اینو بگم خیلی حتما بریم همین هم خوبه من یه زمانی یه چه... فکر کنم سال پنج شنبه ها می رفتم جا به صورت مداوم ما یعنی یخ بندوم اینقدرم میترسیدم که خدا خیلیام ترسام میگفتم اوغلات بالا بلاک کوه میافتم پایین تو این هرسم خدا چو دیدین که درکه اینجوری باری که وقتی یخ میزنم که حالا یه ماجراهایی داره سر در بندریم نخون من هم داتی بدم خیلی میترسیدم اونها ولی چه چه ولی متاسفانه چو تدریس قبول کردم از یه دورانی به بعد اصلا این برنامه دیگه بنکل منتفی شد و خلاص تنبلی و چیزایی همین تو کودم آدم های ایس و تنبلی و خواب و حالا دوباره بزنین برنامه ولی کو خیلی خوب عالم انفیقه نیاز دیگر. به این داره که برای من ها. برای من نیاز داره که شما یه ذره ادراز جسمی رو خودتون کار کنید چون کوه یه فشار خیلی زید رو بدن میاره اگر که بخواید واقعا یه ارتفاعی رو برید بالا حتما و قبلش یه ذر بدنتون رو آماده بکنین اگر نه، عوض تنفسی نه. و استخان، آره سهر. زانو، اینا خیلی در واقع من جوان هستم من خوبه بود روم خیلی خوبه خوشینه ما مطالعهش می‌ونز در سیستماتیکات غیر متغیر سین بعدش چه اتفاقی به خاطر می افتد هیچ اتفاقی منفجر میشه چه اتفاقی می‌افته خوردن بعدش ترین حالتشه دیگه یعنی این انفجاراتی تو بعضی از مباحث ما اتفاق میفته الانم اتفاق افت داده‌ها برای هنوز خیلی گسترده نیست یعنی هنوز بس پس ما تصرفیش بس بعد این حالتش اینه ناامن یعنی و این به مرور زمان نمی... نمیتونم پیش بینی کنم و خدا کنه که به عمر من قدده ولی واقعیتش اینه که ناامنی حتما ایجاد شد چون میدونیم که ایرانی که کشورهای خیلی اطمان با امنیته برای خانمان من اشتر برای خانمان میگم ولی داره کم کم به این سمت و سو سم میره که نه ناامنی داره میشه یکیش اینه که آقایون هم باید بترسن اگه باید یه تایم فرق سوار بشن جابجا جا بشن. از ماشین شخصی خودشون یا خانم ماده از یه تایمی به بعد خوب مراقبت کن تو هر مکانی نیاونج تو جاهای خیلی خلوت تو جاهای شروع خیلی هم خیلی امنی ولی به هر حال تهش اون امنی است دیگه حالا میتونه مسائل اخلاقی باشه میتونه مسائل جنایت برای پول و از این مباحث هم باشه دیگه بله بیشتر از این نیست استاد بعد از بعد شما نظری من میگم توی چند ماه آینده نسبت به شریعیتی که موجوده تو کش بعد نامی، سرقه، کیپکپی، باقعا بیداد میکنه حالا چند مایخه من میخواهم بگم که اصلا نا به بحثان خیلی پسترده تری دارید به مباحث روانی که توی مردم ایران وجود داره و شما از رانندگیشون میتونید رو ببینید و کاملا مشهوده از اطراف ایرانتون تو موید کار ببینید خ می میکنه رفتور غیرعادی که بین بحث غیرعادی رفتور غیر, غیر, غیر نرم اینا همه توشه تو روان آدمما داریم وقتی ما روانمون به هم بریزه همه کند دست هستند الان مثلا من من کمی نداریم اعتدالی ن دیگه مذهب کمکمون ما نمیکنن اخلاق کمکمون نمیکنه منطقی نداری. نداری. پشتش وجود نداریره برای همین برای آیندگان فرزندان نوا ها نتیجهقا بپرسیم. بترسید و کمک بکنید که ایران بهتری داشته باشیم. و این هم نیاز داره که هر کس از خودش شروع کنه از بچه هر هرچی شما روان سالم تنی داشته باشین به خانومیتون، به هاتون، به همسرتون، به خواهر برادرتون، پدر مادرتون کمک کنه. ناخداهای زمینه جامعه را بله دیگه ولی هر باید از خودش شروع کنه دیگه. حالا بالاخره ما که نمیتونیم خیلی بالاخره دولت مردای ما به فکر جامعه ولی من میگم اما است تا زمانی زنده هستیم از خودمون شروع یه بچه روان پریش که همون این کارا میکنه چرا چون هودا با همسرش جوری بچمون درو میکنه بچه اینجا باشه باشه باشه سالمی درنده نه دروغ میگیم بی ادبی میکنیم تهمت میزنیم همه رو بچه‌ای که تشکر داره همه رو میکنه یاد میگیره همکارمون رو یه چیزم رفتار وسازونی دلیل تقویت رفتار منفی محیط همون که به تو گفتم هم آدمی که میگه پیش شما استخدام شوم که بیمه من رد نکن میدونید دخره بدی نیست پسر بدی نیست البته پسر رو کمتر این مژات یه سرن محدودی دارم محدودیت برشرجهه ولی شما که وقتی نمیپذیری یعنیتحویت نمی, یعنی نمی کگه داره من چون داری به اون میگی دروغ بدون و من در این یرغشریه کرد تو اومدی سر کار بود کار نمیکنم و در درآمد، درسته سر دولت رو داری کلا میذاری؟ سر شعبایی فرقی نکنی، کار زشدشته و دولت هم ما این بوده، اون دولت مگر کجا میاد، جیبه، کجا میاد پیزتکش بس به خود آدم هم هم گرد بله پس برمین رفتارهای منفی رو سر بکنیم که طبیعت نکنیم از خودمون، فرزندانمون، همکاره همون، زمجموعه همون، کارگره همون، این کار رو شروع بکنیم کم کم این جامعه ایچ کارم کنه تغییب کنه حد اقلیش اینکه سرمون رو گذاشتیم خواستیم بمیریم بگیم خدایش رو اجدان ما چیه، راحته و ما میدونیم سمره ما، اسم ما برای این کارهایی که درگیم وجود دارده یعنی میگیم یاد ما کجاست؟ براند شخصی نبود همین نمسی برای همین کاره که نکنیم. همین کاره عرضشمندی که انجاری بیدیم. برنامه سی و در واقع عرضیوری برنامه آموزشی رو که خدمتون گفتم همینه. اگر شما تو سازمان دارید برنامه رو میخوایید اجرا کنیم یک یک بودجه بعدی هم براش بکنیم. یا میگید چه بودجه ای دارم؟ چه مدرسی رو بیارم چه فضایی دارم، شیرینی بدم نهار بدم میوه بدم چی؟ و چهی شرایی؟ یه جاش رو در میاره، مدررسه تو تاتخاب میکنه اینکانه تو فضای سازمان خود خیلی کارفرماه هستن برای اینکه نیروها وقت زیاده رو تلف شه همه مثل دسته جمعی برن چه کار میکنم تو خودم مثلا من خیلی وقتا برای کارفرما خودم اینجوری تدریس میکن و خیلی هم بهتره به خاطر که این افراد تو محیط کارشونم یه تایم دیگه بهشون میگن که بمثل چه تا 8، تا شیش چه این کلاسه افراد میاند این کلاس میشینن رازمی تو این ترافیک بخواهم کشن برن، جایی برن و همه دور هم جمعن مال یه سازمان هم. مشکلات یه سازمان رو مطرح میکنن و شما خیلی میتونین متمرکزتر کمکشون کنین که مباحث برشون جا بیافته ولی اگه به صورت بیرون باشه دیگه اون قسمت بوجو تردیس نداری فقط میبونه هزینه اون دوره حالا کارگاه س تو قسمات اثر بخشی، وقتی شما یه نیدیوری رو می میره میفرستید برای آموزش مدیران آموزش، مدیران منابع انسانی، باید اثر رو ببینید اگر مدیر میانی میگه که آقای شیبانی نیاز داره که یه دوره مدیرت پروژه بره وقتی اومد باید باید باید مدیر پروژه دست باشه کسا کار کنه بعد های اشکالاتش رو رفع کنه، بعد دیگر یه جای به بعد بعدا مثلا شیش ماه شما میبینید راست داده و حس نیازهای خودش رو میتونه برآورده کنه. دوست. این اثر بخششه. ولی <تصفح> اینکه شما برید و یه نو گواینامهام بیاد بندازه جلوی رو که حالا یه امتیازی برای حقوقتون حساب بشه و محسوب بشه ولی تو رفتارتون که ببخشید خیلی عذرخواهم. خیلی مشکوکه. نه در شماها بگم. تقریبا دکترا میده که شما انتظار دیدید دانشش تغییر کنه چه رفتار هم آدم این دیپلوم. از دیپلومیش ناخته شد. بیش من اصلا بخش فقط تایتلش رو گرفته. مدره بچند. و دو تا مبحث آخری که به همدلاله می به پایان برسونیم مبحثمون رو که اگر که وقت بشه حتما مسته تا محامات رو با, با هم همون رو یکی بحث ما دیگه تعمل کرده و یکی هم بحث اون جبرانه خدمت یک چیز عضو بخوام نگهت داری به در افراد هستش حالا تا زمانی که بمونن تو سازمانمون رو از سازمان جدا بشن بحث در واقع با دیره یا عرزویشی یا حالا تو وظیفه بستگی به اون نگرش استراتژی من سازمان داره که اگر بخواد سیستمی و تعداد زیادی باشن عمل... مدیریت عملکرد رو تو سیستم پیاده میکنه اگر بده نه، حالا ما یه بزینس کچکتری دارم الان زوده، نمیتونه سیستم میکنم فقط میاد چکار میکنه؟ عرضا به عملکرد یا عرضش یا به عمل کرداره کارکنان و قرار میده نگاه بکنید دوستان مدیریت عمل کرده که دارم یا اصلا من یه سری مسئولیت ها و یه سری کارهای عملیاتی اقداماتی رو شما تو شکل اومد انجام بدهیم که مطمئنه بحث اون مسئولیت و معمولیتی که داریم من موفقم باشه کی نا... کار انجام میده؟ من من, من, من, من فرم یا گروه گفتیم تو سرد فرم یا گروه داره انجام میده درسته؟ من باید چیکار کنم؟ ارزیابی بشه عمل کردم حاصل کاری که انجام دادم باید چیکار کنم؟ عرضیابی بشه حالا میگه یه جو پوشی از نهرنیتون داشته باشین که مدیریت عملکرد و بحث استخدام خود علم مدیریت میده از مهمترین تنین مواحظ منابع این سایی یعنی دوتا بود میتونه برقی قسمت کارا را به راحتی کار پوشش بود جامعا عمل کرده چجوری میتونیم بسنجیم؟ بله اینکه چجوری میتونیم بسنجیم و اجازه بدیم بریم جلو تا بهتون بگم چجوری میتونیم بسنجیم مدیریت عملکرد کار ها با خیلی باید. اینه چج بزن شما یه اهدافی رو تعریف میکن یه استراتژیهایی رو تعریف می برای حوزه عمل کردن بعد می بعد های یه میلیار های شاخص های عملیکرد اون شغل یا اون واحد رو ارزیابی میکنید وقتی ارزیابی کردین گپاش رو در میارید بازخور میدی اصلاح انجام و دوباره برمیگرده تو قسمت اصولا بهتنی شیوه عمل کردم که ارزوی بخواییم بکنیم سه ماه تا شیش ماه هست. شیش ماه بهتره ولی خیلی وقتا من میگم سه ماه انجام بگیم. به چه جهت؟ به جهت اینکه که بعضا خیلی شیش ماهیم. چی ما یه مسئله اشتباهی ما کنیم میریم توی توی اون کمبود توامندیی که داریم قابلیتی که داریم. نگاه بکنید میگه که اهداف استراتژیک اهداف ساییو من شهر وظیفه نشون شود میگه اول که اونم باید برای شما روشن باشه شما باید بدونی که امسان سازمان میخواد کجا بره اگر هنوز ندونی کجا میچه چشمندوزی داره چه اهدافی داره چی رو میخواد تو عمل کردی طرف بسنجی غیر از چیزای عمومی بعد بری چیزای خاصش هم بسنجی اون خاصا برمیاد یا ببینی سازمان کجا بره چی بنا اگر مثال میزنم اگر امسال ما دنبال این هستیم که یه پروژه جدیدی بگیریم تو حوضه انرژی یا اگر که ما در سال جدید میخوایم حزینه ها منو کاهش بدیم این رو باید به تمام دوستان چیکار کنیم؟ منتقل کنیم و بعد بیریم تو عمل کرد بسنگیم ببینیم تو شما واقعا با دوره با چیزهای فرهنگی که ما ایجاد کردیم صرف جوی کردی تو حزینه ها تو بخش آیتی یا نه اگر اگ چیز داره؟ باز خواهر داره ولی اگه کردی، مثبت اگه آمدید به پروژه انرژی بگیریم خب بلد نیستی، مثلا امکارید باید یه نفر را جذب کنید یا اینکه از یکی از نیروهای توامل اون بخواهی یه سری مباحث انرژی و دوره هاش و کنفرانس هاش را چیز ها رو بره مطالعه بکنه یه دونه مشاوره براش بودیم که یه, یه استاد براش بگیریم یه ذره اون رو به روز بکنیم و بعد بعدیم کمک کنیم که این پروژه رو با هم کار بکنیم. پس براینا تو عملکردش اگه داره تمام تمیشه آموزش های اثر بخش می بینه چکار میکنه تاثیر میذاره. حتی توی عملکرد آقا یه ر خیلی وقت تو اون شاخص ها وقتی داریم فرد و رزش را میکنیم. یه کمی اینکه چقدر نوز تکراری یا نوع مهمه، اگر همینخصوصه پروژه توی سازمان انجام ده، جدید که تا حالا روتی نبوده یه امتیاز بیشتری از من که پروژه های مدام تکراری انجام میدم هست. دوتاش هم خروجی داره ها ولی مسئله مثلئله اون وقتی یه کار جدیدی رو داره انجام میده یعنی یه کار چی مزاعت یه توان و انرژی مزاعر چون کار روتین نیستی که کار مدیش انجام هی باید بره مطالعه کنه خطا آزمون کنه وقتی بیشتری بذاره درسته. برای همین اون غرض ارزشیابیش هم باعث پاک کنه تاثیر گذار بشه. وقتی قسمت دوم که میشه استانداردهای عمل کرد، یه چیزایی رو ما بعد تو عمل که همیشه در نظر بگیریم که براتون توضیح میدم. من توی بحث ارزشیابی عملکرد افراد باید یادتون باشه شما میایین میگی که بر حسب اون اهدافی که تو سازمان دارن چه شاخصهایی برامونه؟ مثلا ورود و خروج افراد برامونه؟ رعایت قوانین و مقررات سازمان برای مهمه اینا جزء اون ارزشیابیای چیه عمومیئه بعد و این مسئله دیگه ها مثلا سه تا دو تا آیتم دیگه چی باید ارزشیا بشه شهرونی چقدر تونسته کار خودش رو به موقع یعنی در زمان مقرر انجام بده چقدر تونسته پروژه های جدید دیگه مثلا مع پروژه میک. چون من پروژه کارم چند تا پروژه فروش موفق داشته چند تا پروژه با چه قیمت های اگر موالقش بالاتر میده و رضایت کارفرما رو ارزویش اثر ده بس سی به کاری که اون افراد می کنن باید در بیا وقتی شاخصهاش در اومد شما چیکار می کنید؟ می توانید کنید مهمترین روشش این که کی ارزوی کنید؟ کی ارزوی می کنید؟ یا مشاهده کنه اخوان سازمان کمک داربا میتونه بکنه تو سیستم داربا. عرضیابی مدیر بارده است مدیر مستقیم داربا. شما اولین کسی که باید شما رو عرضی میکنه و مهمتنش هست مدیر مستقیم میتونه حالا تو سازمان ها اول خودم عرضیابی میکنه شیوه های مختلفش اینجور خودم عرضی بکنم خودمو مدیر مستقیمم مدیر بالادستین زیر دستم همکار همصد هم و اگر با مشتری بیرونی در ارتباطم کار فرمون در مورد اون پروژی که من کار کردم یه دونه فرم می اون کار فرمون من رو بر حتی اون شاخص که ساز منتنگ کرده من عبضی رو و اینا جمع می شون که امتیازی من می گیرم و بعد به من بازخور می که آها آه شعبانی از بین این صفر و سطح امتیاز تو هفتاد و و تو در سطح مثلا خوب هستید برای اینکه بسیار خوب بشید یا عالی بشید باید این چند تا ضعف تو برطرف کنید. باید این دورها رو ببینید. باید تو این زمینه خودت رو توسعه بدی. یادتون باشه برنامه‌های توسعه‌ای دوستان فقط رفتن دنبال اینکه آموزش ببینیم، کلاس بریم همین نیستا. یه متولی شخصی باشه. میتونه با یه دوست و همراهی و استاد همراهش لعند. اون نمی‌تونه وقت ناهار خوردن باشه. من با دو تا آدمی هستیم که توامانی و توامندیای مکمل داریم یا اینکه به موضوعات پژوهشی که, که کاملاً علاقه مندی مون هم مشترکه وقتی با هم صحبت می‌کنیم میگه شعر من یه کتابو میارم یا این کتابه این نکادته تو سمیناری رفته بعدم میگم آره من با یکی از استادامم صحبت کردم به این بحث اشارده کرد بعد اومد در موردش با اعتماد برام توضیح داد ها میوم پای تابلو تجربه است الگو برداری اینام هم همه چیه کسب ب دا بشین فقط شیبشین نیست که شما صرف فقط بریت سر کلاس برای همین می توسعه فردی صرف فقط آموزش دیدن به صورتی کلاسیک نیست ها و چ مطالعه کنیم الگو برداری کنیم مربیگری استادا همکارا افرادی که میتونیم ماشون ازشون یاد بگیریم مطالعه موردی خودمون مقاله بکنیم خودمون مطالعه ب از تجربه دیگران استفاده کنیم و ان آموزش هایی بودم بعد به شما بعد دوستان داده بشه این بازخورده باید بیه فرور رفتارشان باز چون بحثت رو بیادگیری گفتیم یادگیری که اتفاق میافته؟ وقتی تو رفتاریم مشروط باشه برای همین رفتار و خصیصه رفتاریم رفتاری من رو میان ارزویابی میکنم دوباره شبانی رو شیش ماهی بعد میان ارزویابیش میکنم و بعد میان میگن که برنامه های توسعه و بهبودش چه حالا هیچ شعبادیه همینطور تو این گردشه تو این چرخ خشه قرار نمیده امکان داره برای سال بعد یه اهداف دیگه تعریف میشه اما یه جوری دیگه خودمو توسعه بدم یا اینکه نه چیزی تعریف نمیشه همون روال قدیمه ولی میگه شعبونی تو نمیتونی پارسال و امسال فقط خوبه حالا خوب دیدی با الی اگه خوب بودی با الی میشه اگه بودی الی تعریف میشه Hey, mucur بشید. besin. Selim Kemal'o tey. O senden bir şey hatırlıyor. Baqşidin, falı yadirin vaqti etraf edirin da vaqti. Ki təqdir tu rəftarətun. Ha, çikar qönü yadirin etfaq biyofta. E, mi kaşam etduna. Yani çi deyin? Almasanma. Deyin. Çikar vaqti. Deyirik ki, ağa bu karı in jüri ancaq. Çi? Deyirik ki, bu karı in jüri ancaq. باید کارگردتون رو بشناسید استعدادای برغوبه شو تشک بکنید توامندی هاش رو ببینید این ظرفیت این آموزشی که شما بهش میدید و داره شما از یک آدم کم بروش نمیتونید یک چیزای کار رو گناده بکنید درسته؟ شما سطح من رو باید ببینی که به من بدید حالا، وقتی به من گفتی چی کارایی بکن عقایه هیچ کار کنید نظرت و کنترول میکنید باید ک عجابه. کارش دو با دوباره انجام بده کار اشتباه کار ضعیف تحویل میدی برگرد دوباره انجام بده پروژه دوباره برید چیکارش ما باز تکرار چی میشه بچه‌ها عادت میشه میره میره تو ذهن یا چه تو سطح کاری درمی تو ساعت کارشناسی تو ساعت مدیریتی اینجاش کار میکنم چون اگر این تغییر نگرش داد اون یادگیری اتفاق می همیشه آقای کاظمی مقاومت کرد هزاری شما دوره برمسش هزار بهش بریمون تهدیدش کن با. باید که باید که یه تقایی شما یه شرط ایجاد کنید که برنید هیچ اتفاق نمیده چون نمیخواد تعدیل کنید و اکثر آدما؟ نمیخواد برای همین میگیم چه کسایی را استخدم کنید؟ کمند کنید نه. من اینجوری حاجبایش نگاه نکنم که می کشم اتونم رو شما داریم باشی نداره شما بگید مهم نه من فکر که می کنم آن ساترول می کشم آنها آدم هایی که دوستان آموزش دهنده و آموزش پذیر همیدی. باشد چون این آدم هایی که شما میتونی توانید ازشون انتظار تغییر رفتار داشته باشید خیلی کمن اینجور آدم هاسته هم آموزش دهنده ماشه خوش همه این که اولش منم برده. حالا ما استثزاییم کنم ولی من, ممیده. ممیده. من, ممیده. من ممیده. خودم تو جامعه ارده. میبینم دیگه آها. طرف از هم نمیخواد قبول کنه کنا کی هم دوستان؟ طوده مردم کارمند کارمند شما از کارمند انتظار چی دارید ؟ کار روتین داریم از کارگرها فکر روتین انتظر مگر من باهوشم با استعدادم تحصیلات ندارم شما میبینید کم کم میشم سرکارگر سرکارگر یه در دیگه میوم جلوتر میشم سرپرست یه ذره دیگه جلوتر خیلی نه قابل میفیسمش آموزش ببینم این پروموشن بده نمیدونم لیسانس فوق دیپلمیه برگش خوبه میفرستم فوق دیپلمم برگ بگیره بعد خیلی تو من خبره یکی از دوستان تو کار میکردن که تو کار ماشین های ابزار سنگین بودن بعد خیلی جالبه بهتوق بگم یه بار دستگاهاشون هم آلمانی بود. یه بار آلمانی ها بازدید کنن از دستگاه هایی که تو ایران ازشون خریده بودن که ایران چیکار میکنن و فلان دا. همونجور که داشتن رد میشدن یکی از این سرپرستو که سخت های خیلی آلمانی، مدیر هم نمیم، سرپرستو یه عصبت میگه و مترجم ترجمه بود. ببینید من دوی دستگاهه خیلی قضیه بر خودش حرف می‌گند خب اگه این مسیر رو اینجوری بره خب هم کوتاه‌تر میشه هم قطار رو نمیخواد هم به هر هزینه دستگاه میاد پای بالا آلمانی یاد می‌مونه میگه اینو بهم ببر حالا که واسه ویزاشو میگیره فلان کار خونه‌ش مون ز بچه بچا آلرژی داره اونا رو با خودمون برد چون ایده داده بود می‌خوام بگم که این کارگرم کارگر هم ولی استعداد داره کشف بکنه اونها این ایده رو که داد گفتم آقا این همون مدل هست استاده واسه اینو بدینش به ماما بدن هر چه نرفت طرف ولی گفتم نه نه درافتش نه رفتش یه دور دید نه کشورش رو تک نکرد دیگه رفت اونجا دور دید گیدرش هم بردن اونجا ببین ایده بود این نمیدونست چجوری اگه کمی به من خیلی و نه این قسمت درختی چجوری چیکو کنیم دستکش هم خازنش باشه کارم هم راحت تر میشه ایده داشت اون رو از ایده این و البته بهتون بگم این ایده ها خیلی قیمتدار ها حالا دیگه من نفهمیدم این معجرات هرکتر نفهمیدم اگر مثل من یه ذره باهوش باشه حتما میره میگه بده مبارد. بعد این دستگاه که ساختیه یعنی مثلا مسئله دومیم درصد فروش شد باید من ایده مال من بوده دیگه اصلا به اسم من که تیزش کنه سبتش بکنی پس بگم که مهم نیست که کارمنده یا کارگر روحیه کاری جایی فرقی نخواهد داشت بشه یعنی چی؟ نه خاطر همیشه تو سد کارگر باشه همیشه روحیه کارمندی داشته باشه چون اینا دنبال کار چی ام؟ روزی چیه زو. و, و همو بهترم هم که اگه روحیه‌شون تو همو ساعت هم میمونن فقط کارشون خوب انجام بده کاری داشته باشه ها این ها ولی اگه تماممنده میام تمامندیش رو اثر بخش می‌کنیم برای خودشون هم سازمان ها ارتقاشون دیگه شما خیلیارو می‌بینی من خیلی بیزینس مندارو دیگه گفتم ببین من کارگرد دوم بازار حالا یه هاج هست من با اوش مشابهده شده هم تحصیلات ها روی هم هنون ندار دیپلوم که بازار اومدم ولی اوش سرک هم بگیرم بیا بزم چه آدمه خانه درست و درمونی بوده تو کرب بازارم، خوب سعی کرده خوبویا رو مثل آقای سلطانی از زم خوشفکر رو بگیره، این روز تو به زینه داره ولی، حالا مشکل داره چرا؟ چون بیس مدیریتی نداره تو بحث علمی رو خوب نشده خوب در میاره ها، ولی به هرهای چیزهای تو سازمان یه کمک باید بگیری دیگه همه که علامه در میزه، مثل من، من مشکل کولر دارم، شوفاش دارم، نمید چه هم میدونم چیزایی مختلف مشکل دارم؟ یک کار من که نیستش که یکی باید تو کمکم بکنه درسته؟ حالا یکی بلاخره آچار به دست بعد باشه ها ماشین هم خودشون خودم نیتونم نمیفهمم اصلا برای یکی بیاد کنه که اهل این کار رو علم میشه اونی داره برای همین هم من تو اون کار میرم از اون استفاده کنم بحث حقوقی رو بله دوستم وکیل دارم هر وقت کارم گیرونه با بک‌گراندش برات میکنم تمام حرکاتمو می‌دنم مثلا می‌دونم چون قدرت شما سر من کلاوزه من نمی‌دونم <تصفيق> که من تو بحث حقوقی نمی‌دونم من نگم که این ققره از منطقی خوبه ولی اون توهم که این بندش با قانون وابسته این بندش ضعیفه اینم به اضافه این بندش داره ترهود تو رو زیاد می‌کنه این ب... انقدرش چرا اوخبر است نمی‌ذارم قرارداد رو نمیبندم بعدش من اون منو عذیت کنی بعد بدم صورتت همون قبلی که برم یه دونه فرمات رو میفرستم اون نگاه میکنه ایراداشو بگیره بعد امزا میکنم تازه میکنه شما قبول کن نمیزا میکنم نمیزام. شاید شهرد من نمیپازیم اوکی وکیر من رفته این مشکل دارم ولی خودم نمیدونم ها؟ پس برمایه اونجوهایی که لازمه اول کار سار کنیه که کردی کمک برد بگیرم و کارو به شب ده, ده کاردونه شکس کنم ولی متاسفانه این قضیه که میگین ای ایران, ایران برعکس هستن طرف اگر استعداد داشته باشه مدیره میگه اه این دوره چیز میکنم میخواد زیرا به من را بزنه میخواد چیز بشه اخراجش میکنم اشکار نده من چون تموم مندم کاردونه همه دیگه دیگه دیگه مدیره که مثل اون عقب افتاده نیست افتاده کنند همه که تیلوری فکر نمی ما که ما تحرمان سال ۸۰۰ سال مهم نیه که تو توامن باشی من مشکل هم سر یه سری آدم ها مثلا خودم میگه ما توامن نیستیم ادعا داریم ما اگه توامن باشیم ترسیم بود و دونگاله ما همیشه کار بر هم اچه بابا بزاره خرار بار بار برمه هست کار برمه هست چون بعد چون به خودم اطمینان دارم میدونم سراغم میان اصلا هیچ کاری ن می‌تونم بزاین خور خواهم داشتم و دارم. به جای اینکه سه تا دارم. حالا یکیش میشه، دو تا دیگه اش هم اعتماد بنا، هم که به خودتون بگید که آقا چا من کار خوب بلدم، می‌تونم انجام بدم. حالا در سطح آلی نیستم ولی در سطح خوب که هستم، خوب‌تر میشم. عالی‌تر میشم. ها؟ فقط مهم نید که شما حرفه‌ای بشید. من بارهام به دانش‌پذیرام می‌گم. شما دنیای امروز دنیای تخصصو. هر چی حرفه‌ای هر بشید، موافق ای ای بازار ای یه یه مدیر عامل هم حرفه‌ای بشید. آیسی من هم حرفه‌ای بشید. بازار بازرگانی حرفه‌ای، اونباله کارشناس یا مدیر بشید ها. هر کسی تو بیزینس خودش وا حرفه‌ای بشه. وقتی حرفه‌ای شد مطمئن باشید که هم درآمد دارید، هم هر کد برای خودتون کار نمی‌کنید، دنبالتون میاد. و قیمتی تو قیمته 5 میلیون، 100 میلیون. ها؟ تو هی دارید چی میشید؟ حرفه‌ای تمی. استادین بحث استداد که گفتیم از اول جلسه ها من یاد یک چیزی می افتنم اگر این سآله رو می فرسد من مباحثت همچنین نمیزرم بین خونا ها بگو چی داشته گفتی؟ منو رو یاده یه مثالی میدازه که خیلی از کارگردانه مطرح احمیان یه بازیگری که زیاد هم حالا معروف نیست و میان جذب میکنن بعد ازش یه بازی میگیرن که بازیگره شیمیاییه برای میت کیلر استار هم حتا میگیره سوپر استار رو تو ایران کیمیایی اولین بار خیلی هاشونو کشف کرده و شما می‌بینید اولین فیلمیه که کیمیایی باهاشون میره ما با اجازه بهترین‌هاشون رو شناخته می‌شن و بعد سوپر استارهای آیندگان یه مسئله‌ای هست چجوری می‌تونیم این استعدادو توی شخص پیدا کنیم یعنی حالا همین که یه آیتمش این بود که گفتین باید طرف دید نظر بده یعنی چی؟ یعنی شما دنبال استعداد میگردید؟ شما دنبال استعداد خودتیه است ما مدیرین می‌خوایم استعدادمون کسیو که تو سازما نه رو... دیگه قربونتتون برم شما وقتی که می‌خوای یه نیروی رو بی، اولا یه نیروهایی داریم می‌تونی همه نیروهاتون در حال حاضر الان ارزیابی کن از کانون ارزیابی استفاده کنیم از مشاور استفاده بکنید. یه سری می‌خواید جذب کنید، تو همون شروع جذبتون می‌فهمید. نه بعد از این چه فاکتوری یا شخص ببینیم که متوجکنید دقیقا باید برید پیشون اینش تو کا اگر تایی که گفتید اگر نمیشونید, نمیشونید، بخوایم م سر باش هزینه برای حداقه یه سر آضمون آضمون های حرفه ای به صورت تخصصی بر شخصتینی عمومی و چیزستشون ببینید و بعد مصاحبه های ساختار یافته بخورید. بعد میشید توی اینکه خب از این خروجی این دوتا شما می رسید به یه آیتاعی در این فر مییه تبدیلش میکنه به قابلیت. میگه خب این کامپسی ها رو داره. حالا تو سازمان من این کامپسی ها به دردتون یه میکن آره ولی یه دیگه هم میخواه خب اشک نداره پ تا شد دارهصد دیگر رو توسش. تو ارزیابی ارزشاببی، شما همینجوری برید با یه کسی تو کافیشااپ، روی از هم یک گرد بزنی شیرونی و نسکافه یا کاپوچینو بخوری که نیمه که چه استدادایی داریم یه برنا داشتی ازش خواهید داشتی چرا تو من تو یک پیشتار کنم که هم ادعای قابل اعتباری بود کمک درش برای. استخدامات سوالی از ادبیات بفهم میگم علوی سوالی دارید خوشبیه جدا جواب بده <تصفح> اگر ما بخوایم برای مشتری برا مشتریام این مسابقه کتابخوانی برگزار بکنیم شما چه روشی پیشنهاد میکنید برای برای مشتریام مشتریاتون کیاست مشتریه من عامه مردم میخوام مسابقه کتابخوانی برگزار کنم اگر لازم عام میخوای حساب بکنید اکثرا طالبه بسیج داره چه <تصفح> سنی <تصفح> داشته <تصفح> باشن <تصفح> سنش <تصفح> رو چه نه، حالا شما رنج سنی رو بگی؟ یکی بخواه چه کتاب آدمای آدم های کتاب خوان، کنن؟ از پنج ساله تا پنجه ساله بخواه بیا ایده بریم؟ پنج ساله که خیمدن دادا دادا از آن استاد، بچه ها اینقدر جلب شدن که وقتی تو سطح سازمانی میاد، شما یه نگاه سازمانی هم نزدن پنج ساله بدن نمیادن فقط آها کتابون به مسائل نگاه کتاب بخونن. میگن کتاب بخونن. خب برای کتاب اینا بخونم؟ ما از شما سوال ما چی بخونن؟ شما اولا گروه هدف مخاطب رو مشخص کنید. بعد بگو چه کتابی؟ آیه یک کتاب عمومی است. آیه یک کتاب سازمانی آیا آیه یک کتاب تخصصی اینا همش چون روشی که من خاطر داشتم کتاب تاثیرگذار. تا ببینم باید مشاوری پول بدیم. چون رایگان هیچ براش چیزی که رایگاه در ارزشی؟ من روشه برگذاری بخواهیم نمیگی بهت مشاهده نمیگی روشه اصلا اله این جلسه آخری هست با ما خوب باشیم بعد... آها، یه همچ شی هم بگی بعد اطلاعات جامعی ای کا کامل داشته باشید بعد برید ببینید که شرت آقا فاضلا داره قولومبرداری از کجا این کار انجام میده آیا توی دنیاایی تو ایران همچین نمونههایی وجود داره ببینیدنمونه های اونها چ کارایی کردم به چهقدر اصلا وقت بوده یعنیتحق با کوچولوم باید بکنیم بعد خلاب میدونیم خیلی خوب با توجه به اونقلگوایی که بود با توجه با اون دانشی یا تجربه که تو ایران وجود داره و اون اطلاعات این آقایه مهدس سلطانیان به ما داده بیتونه سه تا روش باشه از بین این سه تا روش حالا ببینیم برای آبا فازره بهترینش کدوم هست مثلا نای دوکمش در همین حالت قرصو شما بریم بخوریم اصداد این, این چرا اینجا به الان شیبه شو شا. شا. شا. شا. شا. به تو گفتم دیگه <تصفيق> پول برد <تصفيق> <تصوح> بگی این ما نقه دستمون باشه بای. من کلن خودم نگه تو زرنگی مجاورم هم علیکی به اونو خیلی خود سریع ست من مبکر می کنه آقای کاسری و اینجا ببینیم کفش توی بازار برای مشاوره هایی تبصد من چون ما مشارهه بدرتر از من هم داریم ساعت پایی تر از منم داریم دیگه کف کفش دویس پنجه ها ساعتی ساعتی اونم برای ایده ساعتی دادن. یعنی حلید. چون همین حده تو اگه ایده با روشه باشیم؟ نه کمه. من اگر با خودم باشی تو اصلا مشاقران نمیگوزم اصلا زیرا یعنی اون نمیدم. نمیدم. نمیدم اصلا مشاقران نمیگوز داده. مکره که مثلا واقعا ببینم اون بیزینسمنه یه رابطه چی گفتم بهتونی گشه. اون باید دلت باشید تو ارتباطان. بایدون که اگر یه رابطه بلند مدت رو تعریف کردین دنبال چی هم؟ مزاکره شما ها دنبال استراتژی مذاکره تو برد برد هست از امکان داره 700 تومن هم باشه حساب کنم چرا؟ چون من دارم یک پروسه ای رو بابایی کاظه بیمیرم که امکان 10 ساله باشه من صحامشون هم بتونید نه بلی خوش هم نمیدون صحام نمیدون ولی چون یه صوتی برای همینه. آقای من اسمم کی شبدی. من میگم مثلا, مثلاً رو ش... بب... من من این مثلاو مس... برام منم مربیگری میکنم و مشاوریت تو وجه هیچ‌وقت من نمیذیدین تو. بسی رو بهتون میگه. برای این کاری که با آقای چیز... اگه بخوایم با هم انجام بدیم احتمالا من اینکه خودش بعد بره الگوا رو بیاره برام. دو تا جلسه بخوایم بذاریم، دو تا جلسه 1 ساعت و نیمه حتی قبل از یم ولی حتی بخواهیم یک پروژه ترید کنم یعنی از علفتایه شما بگیریم با کمک خودمونم انجام بدیم اون موقع ما اصلا پروژه های مشاوره ای مثلا 15 میلیون سی ملیون اصلا نداریم شخصی سازمانی که بشه که اصلا بیسش متفاوت قیمتش بالاتر شما هزینه چی داره؟ سرفار داره ساد مستر فلن رو ولی داریم مشاوره های داریم پنجه هم به شما مشاوره استعداد تو ایده های برگزاری مصابق بودن من جامعه ها میشنسم، آدم ها میشنسم ایده درچی؟ بخوام روشش تیگه را... روش برای دارم بله خب، شما, شما همچین فلویده هایی که نمیتون روش ایده خودت در بکنی نه، اطلاعاتت جرسن... اتلعات... کامل باشه بعد یه سری کارهایی که توی دنیا انجام شد الگاه رو بخونی، مثلا نیکن درداده بخونی، دوتا هم بخونی کافیه حالا توی ایران، تو رنج. اوا فازلاتی این کاری کردم اگر وجودان رو بیت تو سازمان کوچیک‌ترم تو سازمان خصوصی ها دو تا نمونه از اونها میگیرم جنببندی اطلاعات جامعه این نقش که از اولو گرفتیم و این بحثه در واقع در اون کشوری یه خروجی باشه بعد ما اونجا با این داشته خودمون ایده میدیم حالا میگیم پنج تا بنوشه میذاریم اتاق فکر چیکار می‌کنیم طوفان مغزی خودمون من یه نفرم چون من با پنج تا دوستامم شما من روی میز میریزییم میشیمه hey, ایده می ایده های مصفره. ایده ایدهعا غیرقابلی دست بود hey, هی ایده مییم میشه مثلا 20 تا از 20 تا میکن ده میکنیم 5 تا از 5 تا میگییم حالا برای آب و فاصلسه تا میاد دست شما میرسه میگی وسطی برای همینجوری جووری ایده بیم. ا اگر این ایده بی... یه چیزی بهتون می بگم اگه همین فل ب کسی به تو ایدهداد بلد میکنه چرا شما نمی‌می‌نین ببینید این اطلاعات دقیق و بدون در روش های قبلی همجد. چرا همونجوری می‌تونه ایده بدید ولی نمی‌دونی ایده به درخواهی دادن زما امید اثر بخشی که ما این کارا رو انجام بدیم برای همین میگن که بحثا رو چیکار کنیم کارشناسی کنیم چرا گفتم که شیباری خوب فکر چون خیلی سریع دقیقاً سریع بهتون گفتم بخاطر من چطور 5 ساله ببا چون از 5 ساله برداشتش اینه که پنج سالات تو ایران خیلی سواد دارن یعنی خوندن نوشتن بلدند. ولی پنج ساله به درد این کار نمیخوره. نمیدونم. آیا این داره برای کودکان میذاره؟ کتابم مال کودکه. آیا جامعه پنج ساله واقعا تو ایران من میدونم که نیست. جامعه پنج ساله خواندن نوشتن بلد نمین چون داستان بخونه. چون کتاب در حجم بالا بخواد. تعداد محدودی دارین. ما میخوام برای یه جامعه بزرگتر، عموم مردم بلد. خیلی به داهه گفتن یعنی که یه ایده است که اثرا نمی ایده اشتباهیه میگه نمیدونیم این ایده به درد مخواه یا نه چون اطلاعاتی نداریم یه ایده دادیم وقتمون تلف میشه چون مثل این قضیه هزار تا ایده میشه داشت ولی وقتی که جامعه بدیم اطلاعات جامعهی داریم الگوها رو بشناسیم تجارب و مطالعه بکنیم یه کار کوچولو کردیم یه هفتگی ولی قدقل یه اصلا تا ایده اصلا وخش رو بشتی در واقع شما یه داستانی بخوایید انجام میدی یه مشاوره که طریق و توسه انجام میدی؟ نه, اتنجام... نه، نه، شما میدی انجام میدی، من انجام میدی، من راها برمیدم مشاوره، چی به شما میدی؟ خطو به شما میدی؟ خطو به شما میدی به شما میدی مگه پروژه باشه، پروژه تیم داره؟ بازم شما کنارش یا امکانه یک کارش رو برای شما تعریف کنه چون تو کار مشاوره شما باید با کار فرما اینطوری باشیم هفت ایدهی هم بهش میبیزی با اون چک بکنیم چون اون برای بزینس خودش این کارو رو میخواد باید باش همراه و همسو باشیم بهش اولو باشیم این بهترین شیبه مشاوره داده توی دنیا من مسئول کلینیک مشاوره مدیری قدیم میومد اومدن پروژه های مشاوره تعریف نگه مثل مشاوره مهندسی، پروژه های بزرگ، پروژه های بزرگه که باید آدم های حرفه انجام شد. ولی امروزه تو بحث مدیلیت میگن آقا جو برای بیزینس بیزینسای مثل شما نه دولت ببین هنوزم وزارت خروج پروژه تحققاتی میگه تعداد تمداد خوبه خودش می‌کاره انجام ده فقط با شما جلسات ماهانه دارن برای اینکه خروجگاه رو با هم مرور می‌کنی گپ‌ها رو درمیام خواصه‌های شما رو هم لحاظ می‌کنیم ولی امروزه اومدن گفتن که آقا جا آقاجا بهتریه که بیزینسی که باید انتاف داشته باشه برنامزی استراتژیک 6 ماهه است الان نیاز بهش کلینیکیه مثل دکتر میگه گلم درد می‌کنه اونجوری گوشم فلانه اون با تو صحبت می‌کنه اینو اطلاعاتی رو میگه همونجا میگه ببین به نظرم من اینکه خودت باید ببینی خب خیلی یه طور بولیس بیشتر نظر حواس عده دکتر تو توصیه می‌کنه ازم میگه این دو تا دارو هم می‌خورید بهتر میشه دفعه دیگه میگم بیاد یه نزارت بکونم فشارتو بگیرم گلتو دوباره ببینم نه چه کار از بی‌نخدی بشه مشاوره کلینیکی یعنی حل رو حل مساله میگه حل شده راحت شده حل این مشاوره کلینیکی مدیریتو هر کسی نمیتونه انجام بده. چرا؟ چون شما باید اینقدر تجربه داشته باشی که به محض که طرف به شما میگه من میخوام این کارو بکنم، بگید چه مخاطبی؟ برای چه رنج سنی میخوای؟ هدف از این کار چیه؟ دنبال چی هستی؟ خروجیش برای سازمان پاپار، تطبیقاتیه، مسئولیت اجتماعی تعریف کردی. چی؟ همه اینا بله اگه کسی که خبره نباشه بهتون میگه بله بیا ما وارد میریم رو انجام میدیم دا رو. چند روز هم میگه عجب عجب این یکی مشاور شعبان کلاشی بود مثلا یک دهممون هم پول نگرفت برشت... اصلا بخشه درست رو نمیرسونم خب فیلم است که می ببینیم ما بعد از کلاسو خب همون که یعنی یک و نیم که تموم بشه کلاسمون بعد از اون یه 24 دقیقه فیلم داریم یک و ampak pač jo je še... 50 ur na širok... 50 ur na širok... 50 ur na širok... 50 ur na širok... 50 ur na شده استفاده می‌برد. جونم. آیه، بس ما جا الان. میشه یه این اصطرح به دوستان جا بشه. آره چرا که نه؟ شما که می ما اینکه خمو. درست درست.